ذل الکریم بشنو از نهی چون حکایت میکند و جدائی ها شکایت میکند نیستان تا مرا ببریدند از نفیر مرد و زن نالیدند سینه خواهم شرحه شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز در روزگار وصل خیش من به هر جمعیتی نالان شدم جفت خوشحالان و بدحالان شدم هر کسی از زن نخود شدیار من و از درون من نجست سرار من عادت شعرات در اعثار و ادوار مختلف همینه که مقدمه اشعار خودشون رو و ابتدای اشعار خودشون رو از لوازم عشق از ذکر محبوب و جفاکشی ها و عموما سختی هایی که خوب لازمه عشق هست و در فراق محبوب،, محبوب انسان متحمل میشه و در مسیر رسیدن به اون مقصد عالی خودش متحمل میشه این قمه های عشق اینها رو ذکر میکنن این روش رو حسن مطلع هم میگن و تشبیب هم میگن ازل هم میگن یا ساده تر بگیم این رو مقدمه و دیباچه اشعار خودشون قرار میدن تحمیلی هست بر اصل مطلب مالانا هم به همین قاعده ای که مبل شعرا هست ابتدای مسنوی خودش رو اختصاص داده به یک مبحثی که خب عموما مشهوره در مابین کسایی که علاقه به مسنوی دارن به نینامه و تو این نینام نامه مولانا تلاش کرده که اون لوازم عشق رو و اون جفاکشی ها و سختی هایی که لازمه عشق هست و بالاخره یک انسان محب و یک سالک باید اینها رو متحمل بشه تا بتونه به اون منزله مقصود خودش برسه اینها رو مولانا میخواد بیان بکنه یک سوال اینجا مطرح هست خب البته سوال خیلی سوال به جایی هم نیست اما خوبه که بالاخره گفته بشه بعضی شاید این سآل در ذهنشون بیاد چرا مسندوی با بسم الله الرحمن الرحیم شروع نشده و ابتداعا مولانا شروع کرده معمولا همینطوره که اشعار خودشون رو با حمد خدا شروع میکنن بعد درود بر رسول پاک بعد بلاخره خلفای راشدین و با این طریقه تبرکی با این نامها حاصل میکنن و بعد بالاخره آرا خودشونو شروع میکنه. اما چرا مولانا این کار رو نکرده ؟ گفتیم سوالی تحقیقی و سوالی خیلی بجا نیست. چرا چون شروع کردن با این چیزها تنها منحصر به نوشتن نیست. و گفتن زبانی هم تو این امور کافیه. و همین که یک انسانی بالاخره دست به قلم میشه یک حرکتی رو شروع میکنه؟ و در اعماق قلبش و در جرفای درونش این توکل و تفویز بر ذات خدا وجود داره این استقراق و محویت بر ذات خدا وجود داره و همون اشعار شورنگیزش خودش دلیل محکم بر همین چیز هست خب دلیلی نداره که کسی بیاد اعتراض بکنه چرا این به صورت نوشتاری این اشعار در ابتدا از حمد خدا و درود بر رسول پاک علیه السلام و صحابه کرام شروع نشده و دیگه اینکه اگر اگرچه مولانا اینها رو با زبان یا با قلم علا سبیل تسلیم اینها رو مولانا بیان نکرده اما خب مولانا یک جان مستقرقی داشته و بلاخره سنا و صلوات در اعماق و جرفای قلب او جا داشته و همین چیز باعث شده که الله سبحانه و تعالی این اثر رو مندگار بکنه و مقبولیت عامه در اثرهای مختلف به ما بین افرادی که در مسیر تسکیه نفس تلاش میکنن الله سبحانه و تعالی این کتاب رو مقبولیت عامه بده خب مولانا در همه احوال خودشون عموم و احوال خودشون مولانا فانی الله بودن مستقرق بودن خود مولانا هم در جای میگه ترک استثناء حالا میاد انشاءالله در لابلای داستانی که در ابتدای تنیزک و پادشاه است بعد از این مقدمه میگه مولانا جایی میگه ترک استثناء مرادم قسوتی است این که بعضیا انشاءالله رو ترک میکنن این ترک انشاءالله تنها این لغلق زبان و از روی یک عادت مراد من این نیست مراد من ترک استثناء گفتن از روی قصوت قلبه که نشأت گرفته از قصوت قلب باشه نشأت گرفته از یک قفلت باشه این بده وگرنه خیلی هستن ناگفته استثناء اما جانشون با جان استثناء جفت هست یعنی اینها محون و اصلا یکی هست بلاخره انشاءالله انشاءالله تو جملاتش زیاد میگه اما انشالله، انشاءالله گفتن حالا انشاء میاد تو اون مبحث این تنها یک عادت شده و ت تکیه کلام شده و موقعی که الله میگه یعنی چی؟ یعنی من مشیت خودم رو، خواست خودم رو، تدبیر خودم رو، اسبابی که در دست دارم و اون چیزی که من اراده کردم همه رو وابسته به اراده خدا کنم. من خواستم، اسباب تو دست من هست، تدبیر هم کردم، اما الله اگر خدا هم بخواد، اگر خدا نخواهد تمام تدبیر من تدبیر میشه. تدبیر کند بنده تقدیر زند خنده از این طرف من دارم تدبیر میکنم با اون چیزهایی که ما تحت قدرت خدا هستن و اون چیزهایی که تسلیم امر الله هستن و اونها در نفع ضرر خودشون تابع مشیت خدا هستن اینا تو دست منه من با اینا کاری میتونم بکنم که او بخواد من خواستم حالا خدا هم بخواد نه و ما تشاؤون الا اي الله رب العالمين فرعون خاص چون خدا نخواست دشمنش تو خانش بربرش پیدا کنه نمرود خاص چون خدا نخواست دشمنش تو آتشی که او نمادی از خشم خودش درست کرده بود الله پرورشت داد تا به ما بفهمونه از خواست انسان ها و از اسبابی که اونها در دست دارن تا من نخام نمیشه حالا این ان الله مولانا اینجا میگه بعضیا اصلا ان میگن ان از روی ایک عادته دیدید یک دوستی میگفت من وقتی به بچه‌م میگم انشاالله شاء الله بچه‌م میگه بابا جان نگو بگو های نه بگو میکنی یا نمیكنی چون بچه‌م میفهمه که انشاالله من یعنی یعنی دست به سرش میذارم برو دست از سرام میخوام یک جوابی همین بدم و بدم بالکارش بچه‌م اینو فهمیده که انشاءالله الله بابا انشاءالله شاء الله نشعت گرفته از یک باور نشعت گرفته از یک اعتقاد نشعت گرفته از یک وحدانیت نیست این همین عادتی شده عرفی شده بعد بگه انشاءالله الله برای همینه که بچه ما هم که بهش میگه انشاءالله الله اون بچه چی؟ باهانه نمیشه فورا جواب می‌ده بابا ان شاء بگو می‌کونم این کارو چون انشاءالله ما یعنی چی یعنی میخوایم بچه منو به یک از خودمون دور بکنیم این انشاءالله مورانا میگه ترک استثناء مرادم است ترک استثناء اون استثنایی رو ترک کردن که از روی قصابت قلب باشه این بده و یک عده انسان هستن نگفته استثناء اگرچه که ظاهرا هر لحظه و هر ثانیه انشالله انشالله ورد زبانشون نیست اما جانشون با جان استثناء جفته و همه وجودشون استقراق و محویت و میدونن ما و ما ما و هرچی که در دست داریم بدون مشیت خدا نمیتونه کاری انجام بده حالا اینکه مولانا اینجا بلفرز با زبان اینو نگفته یا با قلم اینو ننوشته دلیل بر این نیست که مولانا اینو ترک کرده بلکه خودتون میتونید در لابلای اشعار مولانا این حرارت رو و این گرمی رو حس بکنید که واقعا مولانا تمام وجودش استقراق بوده تمام وجودش محویت در ذات خدا بوده و این اعتراض یک اعترازی میشه گفت که نابجا هست و سوالی ناثواب هست و زیاد نمیشه به این دقت کرد خب حالا ان وارده مبحث اصلی میشم تا جایی که امکان داره دوستان خورده جلوتر بیان که هی مجبور نشیم چون به هر این نشستن ما هم یک اول متجالسی نفیه این بلاخره نشستن به خاطر خدا هست هر کدوم از یک نقطه شهر از یک منطقه به خاطر خدا از یک فامیل نشستیم کنار همدیگر همین نشستن یک برگ موفقیت و یک پیروزی از این خدا میرسه بنابراین تا جایی که امکان داره خوب محیط مسجد هم یک خورده کوچکتر هست خودمون با خودمون یکم با محبت و با دوستی بیشتر بشین حتی تل امکان تا جایی که جادره جای خالی رو پر بکنین که عزیزایی که دیرترمیان خود بدون هیچ مزاحمتی و بدون هیچ حواسپرتی مستمع صاحب ساخن را بر سر زب قابرد ما محتاج نگاه های شما هستم اگر شما نگاه خوبی نداشته باشید قطعا اون شر صدر از ما هم گرفته میشه و مطلبم از ما هم نمیتونیم امّا فضل رو که ما حق او بیان کنیم خدمت شما خیلی خوب. اینا چیزایی بود که ابتدا باید گفته میشد، اما مطلبی که از خود مولانا هست. بشنو از نی چون حکایت میکنه. بشنو از نی گوش کن حکایت نی رو نیم برای یک حکایتی داره. مالنا این حرف ها رو قرن هفتم زد. قرن هفتم زمانی بود که یعص و ناامیدی کل عالم اسلام رو گرفته بود چپاولی که تاتارها و قوم مقل مسلمانها رو کرده بودند، زخائر فرهنگی و دینی ما رو به یخما برده بودند و از طرف دیگه خود مسلمانها هم گرفتار یک سری علومهای که اینها مقدمه یک مقصد بود تو همین مقدمات گیر کرده بودند تو فلسفه و منطق و تو این علوم بالاخره ابزاری که وسیله رسیدن به مقصد هستند اینا مقصد شده بود وسیله مجلس گرمی شده بود و اصلا اون چیزی که مقصد بود مفقود شده بود از دست رفته بود تو همین بهبوهه تو همین یأس ها تو همین ناامیدی ها مولانا یک حکایتی رو برای هم اون مردمان اون است هم این درد دل خودش رو به صفحه کاغذ ریخ برای عصرهای بعدی تا ما هم بتونیم انشالله در عصرهای بعدی از این درد دل استفاده بکنیم خب معمولا شکایت های ما مسلمان ها متاثر شدیم از این فضایی که امروز در جامعه محاکم شده اما علامه ندوی یک افق دید دیگه ای و یک زاویه دید دیگه ای رو به عالم معرفی کرد خب عرفا و مشایخ در هر زمانی روش هاشون عوض میشه اما اون مقصدشون و اون غایتشون یکیه شاید با زبانی دیگه و شاید با تعابیر دیگه بخوان مسیر حق رو به دیگران نشون بدن تو کتاب ماده خطر العالم بین حطات المسلمین علامه ندوی فرمود تو چرا ناامیدی توی که معمار حرم هستی توی که اگه از خواب گران بلند بشی به تعبیر علام اقبال دنیایی رو آباد میکنی توی که باید به کسراها و قیصرها درس ایمان بدی تو چرا ناامید تو چرا نشستی؟ و فکر میکنی سرنوشت تو دست کسراها و قیصرها هست اونا هستن که معادلات عالم رو به هم میزنن. تو هستی که معادلات عالم رو باید رقم بزنی به نفع خودت و تو هستی که باید برای سرنوشت ملت تصمیم بگیری تو هستی که کنتم خیره امه هستی. به مثل معلمی هستی که خود تو رو سر درس سر کلاس فرستاده اما تو خودت رو مثل یک دانش آموز این کلاس میفهمید. و میگی این کلاس کدوم سمت بره منم برم این کلاس کی افت میکنه منم افت کنم این کلاس کی رشد میکنه منم رشد کنم در صورتی که رشد این کلاس و افت این کلاس دست کیه؟ دست توه تو میگی که مثل اینا نوم. تو اصطاب این کلاسی تو این کلاس رو باید رهبری بکنی اصلا رشد و افول و عروج این کلاس دست توی معلمه حالا من امتی که خدا به من میگه کنتم خیره امت خدا و من مثل یک ملتی مثل ملتای دیگه فهمیدن و میام از این زاویه دنیا رو نگاه می کنم اقتصاد رشد کنه شکوه و شکایتم از اقتصاده سیاست رشد کنه شکوه و شکایتم از سیاسته نمیدونم تجلیات نظامی رشد کنه شکوه و شکایتم غمم از اینایه در صورتی که غم تو چیز دیگه باید باشه بشنو از نی چون حکایت کند و از جدایی ها شکایت میکنه. شکایت تو باید از یک جدایی باشه از یک فراق باشه شکایت تو با شکایت های دیگه باید فرق بکنه این طریق تفسیر مصنوی تفسیر رو شهد دوستان خب درسای دیگه کلاسای دیگه ندیده باشن اما اون چیزی فضایی که من توش تربیت شدم و اکابر بزرگانی که من با اون روش کاری اونا آشنا هستم مثل علام ندوی بزرگان دیگه همین بوده گفتم تعابیر فرق می کنه و برداشت ها متفاوته روش ها متفاوته در اسقای مختلف اما مسیر یکیه به گفته علامه ندوی رحمت الله تعالی امروز ما مشکلات نداریم که ازشون شکوه بکنیم ما مشکل داریم این مشکلی که مشکل ساز شده تا این مشکل حل نشه مشکلات حل نمیشه ما امروز من تو خونه خودم مثال میزنم حالا این لاولای اشعار مسنوی همش توحیده ان شاء الله خواهید دید که مولانا چطور تو هر داستانش تو هر حکایتش تو هر مبحثش میخواد توحید رو باز کنه چون فهمیده نیاز جامعه ما امروز توحیده ضعفی که امروز تو جامعه در شعونات مختلف جامعه ما آمده اگر ضعف تو سیاست ها داریم معاشرات داریم معاملات داریم اقتصاد داریم همه اینها برمیگرده به یک جای دیگه اونجا کجاست؟ توحید مشکل داره یعنی اون رابطه‌ای که من مسلمان باید با مسبب الاسباب و رب الاسباب می‌داشتم، احکم الحاکمین می‌داشتم، مالک می داشتم و با اون تعلق تمام این نظام آفرینش به نفع من رقم می‌خورد، اون رابطه الان نیست. برای همینه که هر تدبیری که میکنم تدمیر میشه، زیر و زبر میشه، مات میشه مرجو. با اسباب تو دستم ماتم. برای همین مولانا میگه مثلا ها شکایت نکن. شکایت بچه عموماً از پاکونش و از سرکنش و از مدادش اینا رو غم بزرگ میفهمه. اما بابا گوی آقا به غمای بچه چی میگه؟ بابا جان تو کاش بفهمی غم چیه. اینا غم نیست حالا مولانا میگه این هایی که امروز در دنیا مطرحه و شکایت‌هایی که امروز در مجلس ها و پارلمان ها و محافل و مجالس مختلف مطرح اینو شکایت نیست اصلا. قابل عرضه نیست اینا اصلا مشکل اصلی و اساسی ما که مشکل ساز شده و باید این شکایت به گوش جامعه برسه شکایت دیگه است چیون؟ اون از نی چون حکایت میکنن یک نکته دوستان اینجا گوش کنید مولانا میگه بشنو نکته جالبیه سامع و شنیدن تو دین ما جایگاه بسیار رفی و بلندی داره امر به استماع میکنه مولانا شروع بالاخره اشعار خودش رو با امر به استماع و امر به شنیدن امر به استفاده نه افاده امر به شنیدن نه گفتن به تعبیر یکی از دوستان خیلی جالب میگفت میگفت ببینید الله سبحانه و به ما دو تا گوش داده یک زبان یعنی چی؟ یعنی به هر اندازه که حرف میزنی دو برابرش چی کن؟ گوش کن چون اگر گوش شنوا نداشته باشی زبان گویا هم نمیتونه پیدا کنی بچه گوش شنوا از مادر داره بعد از مدتی لبه و لحجه و طریق صحبت و همه چیز این بچه میشه چی؟ بگید مثل مادر اما اگر این بچه کر باشه یعنی قادر به شنیدن نباشه گنگم هست. چون زبانش اصلا گوش نیدن نداشته گوشی،, گوشی نداشته تا از مادر چیزی بفهمه حالا زبان گویا هم نداره اگر مولانا مولانا شد گوشی داشت که داشت داد به شمس تبریزی و این یک نوای رو به این گوش رسون که بعد از مدتی زبان مولانا شد زبان شمس تبریزی اصلا لبش لهجش طریق صحبتش عشقش سوزش دردش همه چیزش مثل مولاناش برای همین مولانا در وحله اول میگه از اول اول به فکر افاده نباش چهار تا اصطلاحات عرفانی یاد گرفتی چهار تا قیل یاد گرفتی چهار تا سواد و سیاهی نقوش کتاب یاد گرفتی فکر نکن دیگه رسیدیم به منزلو حالا دیگه نیازه به چی نداری نیازه به شنیدن نداری نیازه به کسب فیض نداری حضرت مفتی قاسم حفظه الله و تعالی ایشان مسابقات سخنرانی طلاب هست و با وجودی که این طلاب بالاخره خودمون بزرگوار هستن گای یاد میادی گوشه میشینه قلم و کاغذی دست میگیره شروع میکنه نکته برداری حضرت شما اینجا چیکار می‌کنید طلاب بالاخره اینا میگن تحقیقی کردن نکات حکمت آمیز زیاد گرفتن من بیام از اینا کسب و فیز کنم از اینا استفاده کنم حضرت مفتی صاحب گاهی اوقات در حلقه تعلیم اهل تبلیغ نشسته در صورتی خود ایشون یکی از رکنهای رکین علمی و عرفانیه بالاخره اون مجموعه هستن. اما با همین وجود این گوش رو همیشه این گوش باید بشنبه. از هر کی میخواد باشه از هر جا میخواد باشه. هر فقر رو باید بشنبم من. خوشا به حال اون کسایی که گوش شنبا دارن. گوش دل باس کردن و شنیدن حقایق دینی از زبان یک انسان کامل اولین قدم برای رسیدن به همه کمالات الذین یستمیعون القول فیتتبعونه احسنا در جای دیگه الله سبحانه و تعالی میفرماد ان فی ذلک لذکر در این قرآن پندی نصیحتی لمن کان له قلب کسی که خودش فهمی داره قلب سلیمی داره و خودش برداشت درست و سعی داره یا او القسمع و هو شهید اگر خودت نداری این قلب سلیم را باید گوش سنوا به قلب سلیم داشته باشی حضرت مولانا ثناء الله پانی پتی در تفسیر مذهبی چقدر زیبا میگه میگه این آیه قسمت اولش لمن کان له قلب این قرآن میتونه وسیله پندی باشه اندرزی باشه برای کسایی که قلب سلیم دارن یعنی کاملین یعنی صدیقین او القسام هو شهید و یا اینکه دلی داشته باشد یا گوشی فرا بدهد با حضور قلب شهید اینجا خب مفتی محمد شفیع عثمانی گفتن یعنی با حضور قلب گوشی نتانا این گوش خالی ببینید عبدالله بن عبه هم گوش داشت پای منبر نبوبت هم شنید و چندین سال صحبت نبوبت رو شنید اما با این گوش و هو شهید نبود از این صحبت رو به نیت اصلاح گوش نمیکرد صحبت رو به نیت عوض شدن گوش نمیکرد یک سری اطلاعات دینی میخواست یاد بگیره یک سری قیل و قال یاد بگیره یک سری دینی رو یاد بگیره که تو این جامعه مسلمان های یک جوری خود اینشون بده و دستش رو نشه که خدای نکرده کسی بفهمه که چی منافقه این به دردش نکرد وسیله نجاتش نشد علم یافته شد ولی فیض یافته نشد برای همین دوستان من هر کی قرآن تو دستش بود به کمال نمیرسه اِنَّلَّهَ يَرْفَ عَوْبِهَادَ الْكِتَابِ و وَيَدَ بهی آخرین. همین کتاب عبدالله بن ابی هم درست میکنه پست و زلیل میکنه همین کتاب چگار میکنه بلند میکنه امیر المؤمنین هم درست میکنه یک عده هستن مثالهایی که در این کتاب آمده و امور متشابهی که در این قرآن آمده اونا رو متردد میکنه و از دین پرت میکنه یک عده دیگه هم هستن میگه این از طرف خدا آمده ما سمعن و طاعتن ما قبول میکنه یظل بهی کثیرا و یحدی بهی کثیرا فکر نگون هر قرآن دستش بود همش هدایت میگیره قرآن تو دست طرف هست اما به جای اینکه هدایت ازش بگیره چون گوش شنوان نداره و گوش دلشو باز نکرد و با حضور قرم گوش نمی کنه. چی میشه بگید نه تنها از این قرآن هدایت نمیگیره بلکه گمراه میشه لذا مولانا اولین مرحله میگه تویی که لمن کان له قلب هنوز اون قلب رو نداری چکار کن؟ القسمع کن چکار کن؟ بش چطور؟ و هو شهید در حالی که حضور قلبم داری حاضری ببینید نکته دیگه این که انسان برای درک حقایق خودش برای درک حقایق برای چیزی که مدرکاتی که میخواد از بیرون کسب بکنه دون حواس داره یکی حواس ظاهری یکی حواس باطنی از اعضای باطنی ما که محل پردازش مدرکات خارجی و محلی برای تصمیم گیری ها و تعیین خط معشی ها اون قلبه است، پایتخت وجوده این حواس باطنی ماست درونی ما هست و تمام اعضا و جوارع ما نهایتاً با اون پردازش و با اون تصمیم گیری که در این دارالحکومه میشه این حرکت میکنن چشم میبینه بر همون مبنایی که در این قلب چیزایی هست دست حرکت میکنه پا حرکت میکنه مسیر زندگی عوض میشه با اون چیزی که در قلبه اگر این عوض شد اونم عوض میشه اگر این عوض نشود اونم عوض نمیشه این حواس باطنی ماست اما مهمترین و اصلی ترین و میشه گفت دارالحکومت پایتخت وجود ما که محل قوه مدرکه ما از همه قوی تر در وجود انسان و محل ایمانه و محل اشقه و محل معرفته اون چیه قلب اما از مابین اعضای ظاهری ما که اینها یک چیزایی رو از بیرون میگیرن جوی های هستن کانال هایی هستن که همشون ناهایتن میرزن به کجا به این قلب میرزن از ما بین اینها دو عضو خیلی اهمیت ای داره یکی یکی گوش چشم و گوش اما از حیث دنیاوی اگر نگاه بکنیم چشم رو مردم بهتر میدونن بگیه آقا بگن خب بلاخره از ما بین چشم و گوش یکی رو باید انتخاب کنی یا باید کور باشی یا باید کر باشی کدوم رو میخوایی؟ قطعا تو عمر دنیاوی آقا وقتی گیر بکنه چی رو ترجیح میده؟ چشم بهتره. چیز مهمت داره اما تو مفاهیم دینی و تو ارزش‌های دینی ارزش سمع بیشتره برای همین در تفسیر کبیر امام فخر رازی میگه برای همین الله در کلام خودش همیشه سمع رو بر بصر چی کرده مقدم کرده ان السمع والبصر والفواد کل اولائک کان عنهم مسئول سمع همیشه بر بصر مقدم شده چرا چون این سمع جایگاه خیلی ویژه‌ای در درک حقایق دینی داره اگر کسی کور باشه احتمال داره این عالم بشه، احتمال داره این حافظ قرآن بشه. اگر کسی کور باشه احتمال داره بالاخره یک سری حقایق و مسائل دینی رو کسب بکنه. اما خیلی کم بوده در طول تاریخ کسایی که چی؟ بگید؟ کار باشن و بتونن حافظ قرآن بشه. هم که باشن هم کور باشن یعنی چشم بینا هم نداره، بتونه ب... ن... یک استاد و مربی حرفش رو نمیتونه بشنید. در کنار مجلس یک عالم نمیتونه از حقایق دینی چیزهایی رو بفهمه برای همین خیلی کم پیش آمده کسی کر باشه و بتونه به بالا آلیترین مقام های تسکیه و مقام های محبت و معرفت خدا برسه برای همین مولانا در اول اول قدم اول به من و شما چی گفت مستمع خوبی باش آموی میخوای مشتری مثلوی من باشی تو این دکان وحدت مولانا جای دیگه میگه این دکان وحدته. همه توش توحید ریخته اگر میخواد تو این دکان توحید موحید بیرون بیاید در بیر بیرون اول اول چکار کن بشنو به نیت افاده نیا به نیت, استفا... به... به نیت استفاده بیا خود تو محتاج بفهم و بیا بگفته این مولانا محمد امر سروازی رحمت الله تلالی در زمان تلویگی میفرمودن یک زمانی مولانا با یک افسوس آهی میگفتن عمومن افرادی که میان پیش ما پرن میان پرن یعنی نمیان برای اینکه این ظرف این رو پر کنن اومدن این پر رو خالی کنن آمدن چیکار کنن افاده کنن آمدن اظهار وجود کنن آمدن با اون 4 تا صغرا و کبرای منطقی که یاد گرفتن قیل و قال عرفانی که یاد گرفتن مفایم عرفانی مقدس معابی و دینداری خودشون رو به دیگران بفهمونن مجلس گرمی کنن آخر آخر واهوایی بشنون و بگی؟ خدا حافظ برن دنبال کارش. بعدم فکر کنن دیگه رسیدیم به منزل دیگر. یام حرف بلدم من بر همین مولانا در وحلی اول میگه بشنو از نی چون حکایت میکنه چرا نی رو مولانا اینجا آورد ببینید حالات سوز و درون سوز و درد باطنی ما اعماق قلب ما با ناله نی یک مشابهتی داره انه الله در رابطه با کی خدا میگه ابراهیم انسان بالاخره با همین آهش به گفته بل اخر هاجمدد اللہ مهاجر مکی میگه به اینها رو به صورت نظم گفته به زبان اردو من همینطور برای شما نظمش یادم نیست همینطور میگم میگم یکی با تقواش میاد یکی با زهدش میاد یکی با علمش میاد من بی دست و پا که هیچ کدوم اینها رو ندارم با عصای آه میام آه انسان یک سرمایه بزرگه و همین آه یک عارف آه یک دوست خدا خیلی شباحت داره به ناله نی همونطور که ناله نی رو میشنبه انسان یک حیجانی در انسان ایجاد میشه آه یک دوست خدا رو میشنوی همین آهش سکوتیه که توش هزاران فریاد نخفته است و انسان میشه از این خیلی چیزا رو خوند و خیلی معانی رو میشه درک کرد این یک مطلب مطلب دیگه این که نی تو خالی شده ما همچون نیم و نوا در ماز توست نی از خودش نوا نداره نوایی نشأت گرفته از هواهای نفسانی و نشأت گرفته از غرور و تکبر و خودنمایی تو نی نیست یک لب یک دهن این نی تو لب یکی دیگه است و اون طرف دیگه یکه بدارن صدایی صدای رو میشنون این از خود نی نیست از کیه از یکی دیگه است که یک نفخهی رو و یک دمی رو از این طرف داره فوت میکنه از این طرف نوایی رو داره میشنوی نه تو دست یکی دیگه است. تو پنجه تقلیب یکی دیگه هست همینطور آرف خودش رو نمیبینه و این نوایی که از او بلند میشه اینو از خدا میدونه این از من نیست این عصای ربانیه این فضل خدا هست این عطایو همونطوری که الله سبحانه و تعالی نبیش میگه و ما رمی می اذا و الله رم این انسان یزایی که تو زدی اینارو تو نزدی اینارو الله زدی یعنی مؤثر عیقی خدا بود این اثر اگر تو اینا آمد و باعث فتو پیروزی شد از طرف خدا بود و رعیت الناس یتخلون فی دین الله افواجا الله تو این آیه نبی خودش رو فقط یک بیننده معرفی میکنه تو بیننده‌ای کننده کیه الله همین انسان عارف می کننده خداست موثر واقعی خداست من این وسط فقط یک, یک آلهی هستم که الله به من توفیق داده الله به من فضل کرده الله سبحانه و تعالی منو داره کشان کشانو میبره عطای اوه فضل اوه به تعبیر شیخ محضرت مالان حکیم اختر رحمت الله تعالی، علیه چقدر زیبا میگفتن, میگفتن باقبان مننت میکنه بر کودها و فضولات حیوانی اینا رو همنشین گل میکنه گل تقوییت پیدا میکنه گل رشد میکنه قامت رهنایی، بوی، حسن زیبایی بعد از مدتی این کودا شایسته است دست به کمر بزنن جناب گل قامت رناداری از من داری، حسنداری از من داری، بوداری از من داری، اگر هر کمال و مشتری داری چی؟ از من داری. به نظرشون این حماقت نیست؟ گفتم دل در سر و کارت کردم، هر چیز که داشتم نثارت کردم. گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی، آن من بودم که بی قرارت کردم. اگر خدا تو رو هم نشین این گل نمیکر و خدا این استعداد و قوت تو رو برای محبت و معرفت و خودش کار نمیگرف آیا تو میتونست این کار رو بکنی؟ حضرت ابوبکر صدیق میگه انسانی که اولش نطفه گندیده انتهاش یک جیفه متعفن و بدبودار وسطش حامل چقدر گندگی روزانه در شکمش این انسان اگر خدمت دینی میکنه اینو باید مننت باغبان بفهمه الا فاضل توه من اگر این دهن الله داره در میاد با این همه گندگی ها فضل تو اله من نگردم پاک از تسبیحشان پاک هم ایشان شدن دو درفشان خدایا من این تسبیح رو نمیگم که تو پاک بشی تو پاکی من میخوام با این تسبیح خودم رو پاک کنم منتی سره خدا نداره این بلکه چه هر توفیق طاعتی که میاد عشقبار میشه خدایا الذين ياتون ماات و قلوبهم وجلا لیاقت نداشتم تو به من عنایت کردی خدای این از من نگیر برای همین نی تو خالی شده نی ببینید کسی که عبادت با تکبر میکنه تو پره این نوای نداره عبادت با تکبر عبادت ابلیس عبادتی که انسان بعدش بگه انا خیرم منه، عبادتی که بعد از اون عبادت انسان به دیگران حسد کنه عبادتی که بعد از اون عبادت انسان دنبال جاه تلبی باشه مقام خلافت اللهی فالعرض رو میخوام شهرت طلبی میخوان این عبادتی کیه؟ بگید عبادتی که توش اقراز نفسانی باشه رضائل درونی باشه امروز مشکل کار ما اینجاست که ما حسد و اصلا گناه نمیفهمیم در صورتی که اولین گناه در آسمان حسد ابنیس اولین گناه در زمین حسد قابل نسبت به حابیل و همین همین امراض باطنی همین حسد باعث شد اعوادات چندین ساله ابنیس همه به باد بره اینا رو ما از لیست گناه خارج کردیم تکبر رو از لیست گناه خارج کردیم تکبر زیر مجموعه داره باست خب بحثش مفصل انشاءالله در رابلای اشعار مسنوی میاد لذا دوست خدا عبادت میکنه اما بعد از عبادت ترسانه لرزانه خودشو خالی میفهمه نواز خداست کی او بدمه کی او بخواد کی او بکشه کی او انایت کنه وقتی ما شما میگیم احدن الصراط المستقیم می دونین چی بدون سلیه اله آمده حضرت علما در جمع خوبه که این حرفها مذاکره بشه این اکابر هم این دوستا و هم که هستن یک حزه علمی نصیب اینا بشه منم تکرار میکنم صحبتای بزرگان رو ببینید یک جا در قران با سلیه اله میاد وحدنا الی الله سوا السبیل وقتی اله آمد یعنی اراۃ طریق یعنی خدا راه نشون بده خدام میره اما یکی دیگه هست بدون صله اله اهدنا الصراط المستقیم یعنی ایصال الی المطلوب یعنی خدا تو منو اله تو منو بکش من نمیتونم بره کنند توی یا به تعبیر مولنان رشید احمد رحمت الله تلالی یعنی خدای تو موی پیشانی منو بگیر و بکش و ببر و خود اله الخیر به من نمیتونم بره احدن صراط المستقمن همین یعنی خدای راه رو تنها به من نشون نده بلکه چگار کن؟ تو خودت منو ببر و به مقصود برسان من خودم نمیتونم بره چون خود روی بی حاصلی چون او کشیدت تو واصلی رفتن کجا بردن کجا این سر ربانی است این ببینید دوستان من حالا دوست خدا عبادت میکنه اما عبادتی که خودش رو از این رضائل خالی کرده از حسد خالی کرده از جا خالی کرده از این اغراض نفسانی خودش رو خالی کرده پاک کرده هر تمنا دل سرخصت حوگه اب تو آجا اب تو خلوت شعری هست شاعری این رو به نظم درآورد وقتی به حکیم وم تانویی نخوندن حکیم ملت... عکیولمت تانویی به وجد آمد سبحان الله چه شعر زیبایی همه یه مراحل سلوک رو شاعر تو این بیت جا داده کاش من مبالغ زیادی می داشتم در عوض این شعر می دادم. چیه هر تمنا دل سرخصت حگ ای خدایا هر تمنا رو از این دل رخصت کردم این دل دیگهالا صاف شده پاک شده جا روز زلم لا اله همه الهای های باطل رو ریختن بیرون اب تواجع. اب تو خلوت ہو گئی خدا یہ حالت یہ تو بیا حالت یہ خالص ہے حالت یہ الہی نہیں ہے حالت جلوے الہ اللہ دي اللہ يكفر اللہ شد بالله كن؟ لا الہ شد حالا هل... الہ الله کن تا قوتا بیرون الہائے باطلن رےختم بیرون ببینید بر همین حالات دوستان خدا مثل این نیه که خودشونو چیکار کردند کردن؟ از هواها و اغراض نفسانی و من من گفتن و تا من باشی تا انا بگی چه؟ تا انا رب بکم الالا بگی و تا انا خیرم منهو بگی انا انا بگی من عبادت من طاعت من خدمت من فلان من به هیچ باری تو محبت و معرفت خدا نداری تا وقت آین دستت گرفتی و کمالات خودت رو نگاه کردی گفتی واه واه به خودت و دیگران رو تحقیر کردی، دیگران رو قیمت کردی، دیگران رو تخریب کردی. تو اون موقع بفهم که تو ایش عرضش پیش خدا نداری. هر که پیش خودش بزرگ شد پیش خدای جدیتی نداره. الله مزعل فی عین سقیرا و فی عاین الناس کبیرا. هر که جلو خودش کوچک شد جلو مردم خدا بلندش میکنه. من تردد علی الله رفع الله. برای اینا بسی جدایات. میدم دوستان خدا خودشونو از این اقراض نفسانی از این من من گفتنها از این ها از این بغضها خالی کردن نوای الهی رو دارن به جامعه منتقل میکنن این دو تا تشابه یک تشابه به خاطر چی ناله شون دو به خاطر تو خالی بودنشون خودشونو خالی کردن خودشونو سپورت کردن با تفویض و توکل زندگی میکنن اگه ده امروز میفهمی اساس همه پریشانی های ما تو دنیا چیه برای اینکه ما با تجویض و اون خواست خدا زندگی نمیکنیم بلکه با تجهیز خودمون داریم زندگی میکنیم من برای سعادت و خوشبختی پرم پرم چی میخوام برای سعادت و خوشبختی بعد اینقدر پول داشته باشم این کارو داشته باشم این شغل و این موقعیت اجتماعی رو این بچه رو این زن رو این دنیا رو این موقعیت رو به اینا قرار نیست هرچی من خواستم برسم وقتی بهشون نرسیدم که پریشان میشه اما یه گتی دیگه تو جامعه هستن با تفویض و توکل زندگی میکنن نحن قسمنا بین ام هم عیشتون خودشونو خالی کردن یه ما سپرده تو هر طور تو به غای عین عین و حکمت تو باد بخای هر چه تو بخای حای که بله متعانی رحمت الله تعالی علی بهشون فرزند نداده بود اما چه تعبیر زیبایی دارن از این میگن نگران نباشن اونایی که فرزند ندارن هاجم دادلای مهاجر مکی رحمت الله تعالی این فرزند نداش شیخشون اینایی که فرزند ندارن نگران نباشد. اون کسایی که فرزند ندارن و خلق شدن خلقت خودشون اصل بوده. خدا اینا رو برای خودشون خلق کرده. اما اون کسایی که چی؟ بلاخره فرزند دارن اینا فرعن. متولد شدن تا کسی ازشون متولد بشه. درخت رو میکاری برای میوه. چه تعبیر زیبایی نه تنها با خدا بغض نکرده چرا فرزند ندارم چرا فلان یک تعبیر زیبا شیخ ما حضرت حضرت ع... اینا اینا اینا چیزایی نیست قابل تقلید اینا چیزاییه که ما فقط ازشون درس بگیریم و بفهمیم دوستان خدا تو چه آلمی زندگی می‌کردند ملت عاشق از ملت ها جداست شیخ ما حضرت مولانا کی مختار دیابت داشتن لوزالمعده شون از کار افتاده بود مرض قند به تعبیر ساده‌تر تو یالا این نام اینقدر شیرینه که من از کار انداخت حالا یکی از دیابت داره صبح تا شب انسولین میزنه و خودش پریشان الا کس دیگه نبود که لو ظلمش از کار بیفته منو این رو کرد این چه بلاییه این چه مصیبتی این با خودت چه سر و سری داره بگید این برای خدا زندگی میکنه حضرت مولانا شیخ الادیش مولانا زکریا آخر عمرشون پاهاشون فلت شده بود هر دو پاهاشون آخر عمر بنده یا الله اون اعضایی که مخصوص سیر در مخلوق از من گرفتی اعضایی که مخصوص سیر فلای همه رو برام نگه داشتی حالا منم میگردم تو کوچه و بازار محبت تو پاها مال کیه؟ مال سیر در مخلوق گشتم تو مخلوقات این طرف و اون طرف و اون طرف برو. حالا زنج زنجیر محبت خدا به پا من داختی. من عصیر خودت کردی حالا اعضایی که مخصوص سیر در تو هست قلبم، فکرم، ذهنم، سینم، چشمم اینا رو چگار کردی؟ اینا رو نگه داشتی حالا منم تو کوچه بازار محبت تو داری سیر میکنم جای دیگم ندارم ندارم چه تعبیر زیبا حالا اگه انسان هست تا آخر عمر زانوی قم بغل گرفته چرا پای من؟ این این پاش فلج شده و پای فلجش داره عشق میکنه این غده لوزالمیرش از کار افتاده باش داره عشق میکنه اون بچه نداره چون از طرف خدا بوده باش عشق میکنه بهترین زندگی رو افرادی دارن که با تفویض و توکل به خدا زندگی میکنن خالی زندگی کنه و افرادی که تو پر زندگی میکنن من برای سعادت باید چی داشته باشم چی چی چی از دنیا از فلان از فلان از فلان از فلان, از فلان. تمام این نقشه هاشون که نقشه بر آب میشه چی میشه بگی؟ پریشان از بهلول سوال کردن چطوری شما گفت خوب ابراق اومده اصلا من نگران نمیشم که اصلا چطور میشه مگه میشه تو این دنیایی که خدا میگه لغت خلقنا انسان فی کبد این همه فراز نشیب این همه افت خیز تو میگه من پریشان نمیشم گفت من میدونم هر حالتی که به من میاد از صرف خدا میاد و خدا چیزی برای من نمیاره مگر اینکه سراسر حکمت من باشه به نفع من باشه اگه بله متانوی میگه وقتی مصیبتی برات آمد. چهار تا صورت مساله بذار جلوی خودت از این مصیبت به خدا نفع میرسه ان ایازو بگید از این مصیبت 50 50 50 به من نفع میرسه 50 به خدا نفع میرسه این درسته ان ایازو این مصیبت بی فایده است همینطور طور علکی آمده؟ درسته خدا کار عوض نمیکنه مصیبت صد درصد به نفع منه درسته ها درسته الله سبحانه و تعالی مصیبت آورده تا بلندیت بکنه الله سبحانه وتعالی مصیبت آورده تا چکار بکنه با این مصیبت رفع درجات بده نگران نشو ببینید سوال تستی میذاره جلو خودش دو مرتبه میگید مصیبت آمده از این مصیبت به خدا نف میرسه انا ایازو بالله برای همین خدا این مصیبت رو برای من آورده قلط از این مصیبت پنجا پنجاه پنجا به من نف میرسه پنجا به خدا نف میرسه بگید غلط این مصیبت همینطور علی آمده؟ هیچ نفعی ندارم همیشه خود به خود آمده، خدا کار عباس نمی کنه اینم غلط مصیبت آمده تا منو بلند بکنه. صد در صد منه چی؟ حالا ببینید درد از یارو در من نیز هم دل فدای او شد و جن نیز هم. ادیاسم با دردشون اشتبک میکنه اینا تو خالی شدن اینا عرفم هم. برای همین اینا سباحت داده بی نی. این دوتا تشویش شد. یکی به خاطر نالشون دو به خاطر تو خالی بودنشون سه به خاطر شرح شرح بودنشون نه سینه شرح شرح داره داغ داغ داره سوراخ سوراخ داره و اینا رو ستورده یکی دیگه کرده بر همین نوای رو منتقل میکنه مولانا تو مثنویش میگه سینه خواهم شرح شرح از فرق خدای سینه ای میخوام شرح شرحه داغ داغ من از اینا نمیترسم چون هرچی این سینه شرح شرح بیشتر بشه داغ داغ بیشتر بشه چی میشه شرح درد اشتیاق رو بگید بیشتر میگه من از اینا من برای سینم اینا رو میخوام با اینا میتونم با تو حرف بذارن حضرت مولانا محمد یوسف رحمت الله علیه شخصیت دوم در دعوتن سبحان الله ایشون میفرمند یک زمانی مخارج مرکز هندوستان خیلی بالا رفت مهمان از جاهای مختلف میامدن برزهای مرکز خیلی بالا رفت آبدا پیش حضرت حضرت بعد از نماز مغرب یاسین میخوند و کلی دعا میکرد معمولیشون همین بود بالاخره چند نفر تازه وارد تازه 4 ماه زده بودن از این تاجرای کم زندگیشون عوض شده بود هنوز هنوز اون های مادیت تو ازهان و افکارشون بود آمدن گفتن مولانا رو میخوام ببینم گفتن مولانا وقت ملاقات نداره بعد از مغرب از لای دری پنجرهی چای خلاصه یواشکی نگاه کردن دیدن مولانا تو اتاق چکار میکنه دیدن مولانا داره زار زار گریه میکنه مثل ابر بهار اشک می‌ریزه بعد از یکی از اون کسایی که دم در نگهبان بود کردند کردن چیکاره حضرت چه چی غمی داره حضرت نمیدونم قمه اون بیشاره دمه دا درم هر از زن خود شد یار من واس درون من نجاست من اون بیچاره تازه تو مسیر آمده بود گفت نمیدونم فقط همین قد میدارم قرضای مرکز زیاد شده سلام واه واه واه این که نیست این که بلای نیست این که مصیبت نیست ما خودمون میدیم دو ساله بر هم نشستن و کل قرضای مرکز رو دادن بعد گفتن حالا فردا بریم ببین چه خبره حتما دیگه فردا مولانا دیگه جمع میکنه سجاده و دلغ به خب قول معروف یاسین و همه رو خوب مشکل حل شد و من الناس من الله علی حرف اده از انسان هستن خدا رو کناره عبادت میکنن و هاشیه اگر نعمت آمد میان تو سعنه نعمت که نیه آمد نغمت آمد چگار میکنن؟ فرار میکنن قرار میکنن پشت میکنن اینا عبدالنعمن اینا عبدالمؤمن نیستن خدا رو به خاطر نعمتشون نمیخوان اینا مسکی هم مثل بنی اسرائیل و سلوا باشه قربون خدا میرن اگه هر و سلوا رو ازشون گرفتین اون موقع میگه اذهب ال اذهب انت ربك فقاتل ان هناك قائد موسی تو خدات برو بجنگ دیگه ما رو نبر با خودتون ما ضعیف خودت هم قبی خودات قبی ما رو کجا میبری این موقع هستن به خدا رو به خاطر نعمت‌ها می‌خوام. برای همین خدا این قوم نالایق رو وقتی خطاب میکنه میگه یا بنی اسرائیل ذکروا نعمتی بنی اسرائیل شما که منو بخاطر نعمت خاطر نعمتام می‌خواید. نعمتام یاد. اما به این امت خودشی میگه فاذکرونی شما منو یاد کنید چون شما امتی نیستید که به خاطر نعمتام منو بخواید. شما منو به خاطر خودم می‌خواید. حکیم العلماء طاهوی میگه ای ای دوست الله سبحانه و تعالی تو این امت مردانی پیدا کرده که اگر بالفرز بالفرض و والمحال الله جنتی نمی داشت و جهنمی نمی داشت اینها خدا رو ویل نمیکرده تو قرب خدا اینا جنتی دیدن که از جنت آخرتم مستقنی شده با نزدیکی با رب بهش خالق بهشت اینا به هایی رسیدن که بهشت مخلوق هم براشون محدود جلوه میکنه قرب لا محدود خدا رو تجربه کرده. خب بعد اینا مخارج مرکز رو که دادن روز بعد آمده بینم مولانا چکار میکنه دیدن باز مولانا همون عشق همون آه همون دعا همون نیاز همون الها اصلا اینا نمیخوان اینا رو حضرت مولانا محمد قاسم نانطبی بانی در لوم دیوبن و از خلفای آجمدادلو مهاجر مکی رحمت الله تعالی حسن کرامت اینه من کرامت اینه هرکی اینو داشت خاک پاش و سرمه چشمتون میکن این کرامت عقیقی استقامت در دین و از مصیبت از, از اینکه انسان بتونه انسان ساز باشه انسان سازی کرامت و اینکه انسان از سختی ها در راه خدا کار بکنه پله ترقی درست کنه عشق کنه با سختی ها در راه خدا این نشانه ولیه به هر قاسم نانوتوی بانی دارالوم دیوان یکی از اصول ضوابط دارالوم دیواند اینو نوشتن که اون پسنداز دارالوم دیوبند رو به یک شغل و به یک کار خاص نزنید که درآمد مستقل و ماهانه ای برای ما تعیین بشه چون اگر درآمد مستقل و ماهانه آمد توکل و تفویض و عنابتمون از خدا گرفته میشه بذارید همینطور که میاد بیاد و ما این الها و از خدا گرفته نشه اگر درآمد ثابت ماهانه آمد نگامون به اون میفته نگاه من از خدا برداشته میشه اینا چه عالمی دارن سیر میکنن ملت عاشق از ملت ها جداست برای همین اینا رو اصلا سینه سینه شرح شرحه شون اینا نمیخوان ویل کنن اینا این با این سینه شرح شرحه و داغ داغ خودشون که مثل نی سوراخ سوراخ شده دارن چیکار میکنن بگید عشق میکنن و و اینو به صد درمان نمیفروشه فروشن به هر حال به مولانا حضرت مولانا یوسف صاحب گفتن روز بعد آمادن دیگه گریه میکنن کنن گفتن حضرت ببخشید بافو کنید ما همه مخارج رو دادیم دیگه جای نگرانی نیست حضرت بعضی که داشت تمام شد گفتن شما من منوجهن کار خیر خوبی کردید کار مبارکی کردید پولتون رو در رای سعی صرف کردید صرف علای کلمت الله شد اما از یک جهت به من جفا کردید از یک جهت به من جفا کردید گفتن چطور؟ گفتن این ای بود که من این دل شکسته رو در این دار بارگاه خدا می آوردم و با خدا ساعتها حرف می زدم از دعا نبود مراد آشقان جز سخن گفتن به آن شیرین دهان شما این بحانه رو برداشتید هر روز بحانه بود به این بحانه برمی زدم یک آقای تازه ازدواج کرده بود خودش صحبت می گفت همون زمانی که من تو عقد بودم و تازه ازدواج کرده بودم خودم قستن کیفم و تو خانه پدر خانمم جا میگذاشتم میرفتم تا وسط را و تو بوس کلی را میرفت میگفتم آقا نگ تو این روستایی‌ها، و اهل داد نفهمن چی شده و همه فکر کنن واقعا اینا چی بوده؟ شده این خودش داره برای خودش مشکل درست میکنه چرا؟ چرا با مشکل داره عشق میکنه؟ بگید. بگی؟ <تصفيق> چون به سال محبوب رو میخواد همین بحانه ای برای یک در رو بزنه با یک حرف بزنه همین رو دوست داره بعد میگه خودم این ها رو درست میکردم خودم عاشق درد بودم خودم عاشق مصیبت بودم بعد کیفمو جام میگذاشتم تو ماشین مینشستم میرفتم کلی را بعد نگهدار چی شد؟ کیف هم مجا گذاشتم. همه اهل روستا می وای وای بیچاره چه مصیبتی تو این د حالا آلوول کن برو می نه کیف نبد دست بره کیف مقصد نبود چی بود؟ چیز دیگه مقصد. تو همون دشت بر همه این اتوبوس برای من حسرت میخوردم تع دل من چی بود؟ بگی شادی و خوشحالی باانه بود میرفتم چی شده کلی را رفتم مسیرم گذاشتم اینا شکوه نیست جای دیگه میاره. اینا شکوه نیست. ظاهریه اما تهدل چیه؟ بگید سرور خوب شد جا گذاشتم الحمدلله حالا ببینید این عشق مولا کی کم از لیلا بود اون مولا کی بلاخره عشقش <تصفيق> میتونه از لیله دنیا کمتر باشه در صورتی که اون نقاش ازلیه که لیلاهای های دنیا رو بر روی یک نطفه گندیده صورتگری کرده و قیصحای رو مجنون رو اون درست کرده اون خودش چقدر حسینه چقدر لطیفه چقدر جمیره دوستای خدا میفهمن با این دردا کیو به دست میارن ما هستیم که بهشون نگاه میکنیم میگیم واه واه ابراهیم رفت تو آتش اما ابراهیم میفهمه آتش چی ما میگیم واه واه یوسف رفت زندان یوسف چی میگه رب و احب اله یم این ماید اوننی زندان برای من محبوب نه چیه؟ احب محبوب نه چیه؟ احب محبوبتر زندانی که تو اون قرب مولا باشه از صد تا گلستان بهتره برای همین به اینا میگن چی؟ اینا رو حالات، اینها رو و این ظاهر جسمانی اینا رو به چی تشبیح دادن؟ به نی بنده خدای آمده میگفت آلات موسیقی حلال است سبحان الله از کجا فهمیدی؟ چون مولانا گفته بشن از نی سبحان الله ماشاءالله شارع بزرگی بعد من بهش گفتم جناب این اینه این شورا حدیث شورا معتبر همه اینو گفتن چون این تشبیهاتش وجود داره اینطوریه بگو نخیر این همینه گفتم نگاه کن اگر مولانا قائل به اینه که نه اله میگه رسول میگه آیات قرآن میگه احادیث میگه این آلات موسیقی حرامه اگر بالفرض و المحال مولانا بگن موسیقی حلاله من این برگ رو میکنم به دیوار میزنم. من میگم خدا اینو میگه تو میگی مولانا اینو میگه اینکه اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباوا من دون الله بالفرض و المحال اگر مولانا اینو گفته باشه من این گفته ای مولانا رو چیکار می‌کره دیوار می‌زنه در مقابل حکم الله و رسول حکم هر کی میخواد باشه هر مقتدایی هر مسلمی اعتبار نداره من جلسه گذاشته هم خدمت دوستان گفتم اتی الله و اتی الرسول و اولی الامر منکم فرمودن اولی الامر منکم مراد علمای ربانی هستن ما ربانی کی واجب الاطاعت هستند وقتی که اطاعتشون زیر مجموعه اطاعت الله و رسول باشه اینا اطاعت مستقلی ندارن اطیع الله اطیع الرسول اینجا اطاعت مستقل نیامده و اول الامر منکم ادول الامر وقتی اطاعت میکنیم که چی بگید طبق حکم الله و رسول بگه اگر نه ما تو این امور اطاعت نمیکنیم اینا هم دوستان بفهمند بشنو از چون حکایت میکند حالا دوستان ببینید واس جدائی ها شکایت میکند گفتیم نی تمثیلی هست از روح ولی یا انسان کامل که به سبب جدایی از اصل خودش یعنی نیستان وجود یعنی عالم روحانی و عالم معنوی که بهش میگم ملکوت که در یک مرتبه قبل از این مرتبه عالم مادی بوده و روح اونجا منزل داشته نالان هست بله در اون عالم یعنی عالم روحانی و عالم ملکوت در محبت و معرفت الهی این مستقرق بوده مشغول بوده حالا از وقتی که با عالم اجسام مرتبط شده یعنی عالم ناسوت مرتبط شده در حصار صفات جسمانی گیر کرده یعنی در قذب، در شهوت، در غفلت در این چیزهایی که لازمه جسمانیته خودش رو تو اینها محصور می‌بینه. و در صفات روحانی که باید در وجودش باشه تا با اون وصل بشه در این صفات روحانی خودش یعنی محبت یعنی معرفت در اینها چی دیده خای نخای یک ضعف های دیده یک کمیهایی های دیده آمده تو عالم دنیا تو اینا یه خرده ضعف دیده سستی دیده حالا وقتی که این با یک کشش و جذب الهی الله یجتبی تابی اله یشا الله یک کشش یک جذبی برش معیّا میکنه با کشش و جذب الهی یا با هم یک انسان کامل هم نشینی انسان کامل یا با خوندن کتابهای اکابر بزرگان که جنبه اصلاحی داره و تحذیب نفس داره قفلت ها ازش دور میشه بیدار میشه متوجه میشه که من چه قیمتی داشتم مرق باقی ملکوت بودم من با این دنیا اصلا ارتباطی نداشتم آمدم تو این دنیا خودم رو به چی فروختم؟ منی که مال خدا بودم منی که مشتریم خدا بود منی که با خدا سر سودایی داشتم منی که الله منو خلیفت فل فلعرز کرده بود منی که الله میگه لقد کردم نابنی آدم من آمدم تو دنیا به چی راضی شدم؟ چرا غافلم؟ مرا مبادم دم که بی یاد تو بنشینم خدای اللحظه بدون یاد تو برای من جهنمه من دنیا رو بدون تو نمیخوام زندگی من گفت حیاتی که مراست. زندان است که با دوست و صالی دارد خدا این زندگی من زندگی نیست ببینید الله میگه من عمل صالح من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحینه حیاطا طیب لام تأکید نون تأکید الله میگه حیات طیب میده بر این میگه حیات طیب من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا دنکا بر این میگه معیشت بر اون میگه حیات. یعنی کسی که بدون ایمان و عمل صالح زندگی میکنه اصلا اسم زندگیش حیات نیست چیه؟ معیشت حیوانات هم یک معیشتی دارن گیاهان هم یک معیشتی دارن یعنی یکی مثلون اما حیات مالکیه بگید؟ حیات مالی کسی که با ایمان ایمان والذین آمن و اشد و خبه لله زندگی میکنه با عشق زندگی میکنه این نیست. حیات حیوانیه این حیات انسانی نیست حیات انسانی با ایمانه با اعماله کسی که اینو نداره در حقیقت چی این که میبینم خلاف آدمن میین آدم اندر خلاف آدمن این تو قلاف انسانیتن انسان نیستن برحال وقتی که اینها رو با یک سری براهین و شواهد در وجود اهل الله زندگی اهل الله رو میبینه برانداز میکنه و حالات و سکناتشون رو میبینه صحبتاشون رو میشنوه و با یا با چشیدن ذوق اون عالم یک خلوتی با خدا داره اون ذوق براش تازه میشه، اون خلوت حضور با خدا براش تازه میشه. اون موقع چیکار میشه بیاد عالم اصلی میفته. و اون صفات حقیقی خودش رو به یاد میاره. واه من کی بودم؟ مرغ باغ ملکوت بودم حالا آمدم تو این قفس دنیا محصور شدم محدود شدم از این پرواز ملکوتی محروم شدم حالا چیکار میکنه مثل مرغی که خودش رو به چی میزنه به این قفس میزنه به این طرف و این طرف آرزوی پرواز داره و نمیتونه بعد چی کار میکنه نغمه داره بعد چی داره بگید نفیر داره آزادی رو که نمیبینه چه چی داره بگید نغمه ای داره قاهی داره نفیری داره وقتی در و باز نمی بینه رقگاه ملکوتم مییم از عالم خاک دوس روزی قفسی ساخته اند از بدنم خورممان روز که از این منزل ویران ایران بروم راحت جان طلبم و جانان برومم دو مرتبه به اون عالم اصلی خودم وصله بشم. من کی بودم من مسود ملائکه بود پدر من. من محسود ابلیس بودم ابلیس که چندین هزار سال عبادت کرد با من حسد کرد من چیزی داشتم که ابلیس با من حسد کرد با این همه عبادت من معلم ملائکه بودم یا آدم و انبعه هم به اسماعه هم من بودم که پدر من بود صلاحیتی پدر من داشت استعداد بالقوهی پدر من داشت که گفت معلم کی باش؟ ملائکه و کرروبیه ها باش تو من علم بود تو من عشق بود برای همین من تونستم به جایی برسم که چی مسجود ملائکه بشم معلم ملائکه بشم چی شده تو این دنیا خودم و به این بهای اندک فروختم چی شده خودم و به این مشتری های دنیا خودم و فروختم و حسرتا و وا ویلا افسوس میخوره عارف اینجا از شکوه میشه بلانا همین شکوه و شکایت رو چی کار میکنه بگید اینجا معرفی میکنه منی که خدا ربنای منو بر همین تو کلام خودش به من ربنا یاد داد خدایی که حرف زدن با منو میخواست من میگفتم می الحمد رب العالمین از اون طرف خدا چی میگف؟ حمدنی عبدی من باید تو با خدا حرف میزدم عقم السلاة لذکری خدا باید با من حرف میزد با کلامش من باید مال خدا می بودم خدا مال من من کان لله کان الله له من چی کردم با خدا؟ یلا من جفا کردم بعد تو اون گفتیم روحانیت خودش و اون تو صفات روحانی خودش محبت و معرفت وقتی کمی میبینه اون موقع چی پیدا میکنه؟ بگید نفیر پیدا میکنه ناله پیدا میکنه دوست خدا به خاطر از دست دادن یا کمرنگ شدن اون یک نفیر و ناله آشقانهی پیدا میشه و با زبان حال یا با زبان قال اظهار تعصف میکنه و شرح انگیز این حکایت جدایی رو چی بیان میکنه اینجا گفت جدایی ها خب؟ چرا گفت جدایی ها به صورت جمع گفت این هم یک نکته ای هست بین دوستان چون جدا شدن صفات حمیده روح صفات محمود روح صفات زیادی هست یکی دوتا نیست اینها رو مثلا محبت، معرفت، ذکر دائم حضور، قرب اینا زیاد هستن به خاطر تعدد این صفات حمیده روح مولانا گفت از جدایی‌ها، جدایهای مختلفی که برای من به دست آورده از این جدائی ها من چی دارم؟ شکایت دارم. خب حالا آسان شد برای ما. بیت اول بود، کلید بود. این کلید اول بود. فکر نکنید همه اشعار مسلمی با همین حالت هر بیت مولانا چقدر طول میکشه؟ یک ساعت طول میکشه، انشالله آینده اینطور نخواهد بود البته ایرم به شما بگیم ما نمیخواهیم اینو تمام کنیم بعد بگیم خداحافظ این تمام شد کتاب دیگه به ما معرفی کنیم نخیر، ما قرار انشالله از بیت، بیت این انشالله چکار کنیم؟ بگید، پله پله تا خدا مولانا خودش میگه در یک بیتی پله پله پل تا خدا این پله اول بود این پله اول یکم معمولا سنگین‌تره تا نفس رو آماده کنه رو پله اول بیاید این کلید بقول قول کلید بر کلید کلید مثنوی بود و این اگر باز بشه ان شاء الله تفهیم شده باشیم اشعار بعدی برامون آسون میشه خب بیت بعدی رو بگیم که از نیستان تا مرا را اند از نفیر مرد و زن نالیدند وقتی مولانا روح انسان کامل رو به نی تشبیه داد و عالم ارواح رو به چی تشبیه داد نیستان تشبیه داد خب حالا تعبیر کردن عالم ارواح به نیستان خیلی چیز خوبیه برای همین مولانا فرمود که از نیستان یعنی از کجا عالم ملکوت عالم اعلا تا از اونجا منو جدا کردن از نفیر مرد و یعنی چی ابناع زمان. ابناع زمان مرد و, و همه ابناع زمان از ناله من ناله پیدا کردن. ناله مولانا الیاس رو در دعاها علام ندوی میگه وقتی ما میدیدیم از ناله مولانا ما به چی میفتادیم؟ ناله میفتادیم. ناله دوست خدا عموما همین طوره که ناله دوست خدا به دیگران اثر میکنه. اگه مولانا تانوی سهال کردند آیا کسی که عاشق خدا میشه خودشم میفهمه که من عاشق شدم؟ عاشق خدا خودش هم میفهمه که من عاشق شدم گفت بله همونطور که یکی بالغ میشه اولین نفری که میفهمه بالغ شدم چیه خود اون فرده اینم میفهمه و یک لوازمی داره، مقدماتی داره بعد یک مثالی زدن حکیمولام تانوی بسید آشق نفیر و نالش به همه عثر میکنه یک زنی خب مثالی هست حکیمولام زدن منم بیزرم یک زنی میگه برای اولین دفعه میخواست وضع حمل کنه بچه اولی خودم میخواست بهش بده خیلی خوب بچه اول رو هم مرد هم زن خیلی مشتاقن بچه اول رو بالاخره داشته باشن تجربه خیلی خوبیه بچه اول حالا بچه همه خوبن ولی بچه اول یک حالت ای داره به این زن اون موعد مقرر که رسیده بود میخواست وضع حمل بکنه اون شب نمیخوابید هنوزم شروع نشده بود اون دردش و اون حالت وضع حملش زنایی دیگه بهش توصیه میکردم بگیر بخواب استراحت کن شاید آخر شب نتونی بخوابی میگفت نه نمیخوام به زور خودشو نگه همیداشت هم پلک چشماشو وان، وانگه همیداشت هم که چی نخوابه آخر یک که نگه خود چرا نمیخوابی بخواب الان که مشکلی نداری آخر شب ممکنه مشکلات بیاد و نتونی بخوابی که میخوام اون لحظهی که وضع حمل میشه خواب نباشم و اون لحظه ببینم ب اولین دفعه من بچه رو ببینم که ببین جناب اون لحظه ای که تو وضع حمل میکنی خودت متوجه میشی که بماند تمام این خانه متوجه میشن بماند ممکنه تا چند کچون طرفتر چی ناله و نفیر تو به گوش همه برسه. نگران نخش تو تخت بگیری بخواب مو دو رو دی و موعد مقرر که برسه نفیرو ناله ی تو به گوش همه میرسه حالا نفیرو ناله ی دوست خدا همینطوره به گوش همه میرسه یعنی امکان نداره دوست خدا در یک مجموعه قرار بگیره اون مجموعه ازش رنگ نگیرن اثر نگیرن عوض نشن رنگ نده به دیگران و اون محیط خودش رو اثر مثبت و صحیح نده از عشق خدا و معرفت خدا همه رو عوض میکنه حتی اگر زبان نداشته باشه الیاس زبان گویا نداشت لو زبان داشت و گویا که حتی مطلبشون میتونه تفهیم بکنه به مولانا محمد منظور و نعمانی میگفت یا به علامه ندوی میگفت این صحبت منو تشریح کن برادران اینا تشریح میکردن. شیخ ما حضرت مولانا کی محمد اختر صاحب تا چهل سال میگه زبان من بسته بود تا چهل سال نمیتوترن سخنرانی کنه بعد از چهل سال الله زبان رو گویا کرد و هر کتابشون هر سخن سخنرانیش رو به صورت یک کتاب در اومد و الله سبحانه و تعالی اینا کرده خدا میدونه تا قیامت ببینید عشق وقتی در وجود یک انسان باشه لازم نیست که حتما زبان چالاک داشته باشه دیدنش اداره و ذکر الله تابلوه محبت خداست سکوتش فریاده و بودن در کنارش خدا رو به یاد انسان میندازه برال که از نیستان تا مرا ببریدند از نفیر مردوزن نالیدند این نفیر گفتیم در دیگران اثر میکنه حکیم العلوم طهانی رحمت الله تعالی میفرمازد این قاعده فطرت هست که در و سوز عاشق صادق به اطرافیانش چیکار میکنه سرایت میکنه همین سرایت کردن این درد به اطرافیان رو مولانا فرمود از نفیرم مردوزن نالیدن بعد شری که تشریح کردیم خدمت دوستان سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق عده از شورا گفتن مولانا این سینه رو برای خودش میخواد تشریح شو کردیم نمیخوام دو مرتبه تکرار کنیم تکرار مکررات میشه عده از شورا گفتن این مراد این سینه رو مولانا برای خودش میخواد سینه شرح شرحه باشه تا بتونم این درد رو به جامعه منتقل کنم. ایده شروع گفتن نخیر. این سینه رو مولا رو برای کی میخواد؟ برای مخاطبش. کاش مخاطب من سینه شرح شرحه‌ای داشته باشه تا بتونه سنخیت و ماجانستی داشته باشه. من بتونم این درد رو به سینه او چگار کنم؟ منتقل کنم. سینه من که داغ داغ هست. سینه طرف مقابلم باید داغ داغ باشه تا اینا رو بتونه چگار کنه؟ حامل این درد باشه. وگرنه نمیتونه اینا رو درک کنه. من مخاطبی میخوام که سینه شرح, شرح داشته باشه. این هر دوتا بلاخره آمده احتمال وجود داره هر کسی که دور مند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش شاید شما تعجب کنید چرا این همه نفیر چرا این همه ناله هر کی از اصل خودش عقب بمونه همینطور میشه یک قطره از دریا جا میمونه تو رودخانه افتان و خیزان و قلتان با یک ترنم آشقانه قلته و میخزه و میره تا خودشو به کجا وصل کنه بگید دریای واس کنه یک ترنومی داره کنار دریا که میشینی گوش میکنی همین جویباری که افتان و قلطان قطره دور افتاده از دریا میره که خودشو به اصل وصل کنه چه کاره؟ یک صدای داره قشنگ تسکین میده انسان رو تجربه کردین دوستان حتما روانشناسا میگن کسایی که ناراحتی روحی روانی دارن بشینن و فقط نفیر کی رو گوش کنن همین قطره دورافتاده از اصل خودش رو نفیر اینو گوش کن تسکین میشه آرام میگیره یا بچهی به مادر میگن ام ام یعنی ریشه ام یعنی اصل بچهی که از اصل جدا شده باشه بیقراره شیخ ما میگه عدرت مولنکی مخترسه رحمت الله تعالی که تو مطاف در مکه مکرمه یک بچهی مادرشو گم کرده بود سجی میزد گری میزد ناله فقان هر مادری میامد هر زنی میامد دست به سرش میکشید بچه تسکین نمیشد. آرام نمیگرید. هیچ آگوشی بچه رو آرام نمیکرد. هیچ تتمی، شکلاتی بهش بدی بچه چرا آرام نمیکرد. یک مرتبه من گفتم یا الله مادر اینو پیدا کن متفه این بچه، اینطور پریشانه. اینقدر این نفیر داشت که ما هم چیکار شده بودیم؟ درد من شده بودیم. یا الله بچه این. من تو شوت بعدی میگم آمدم دیدم که الله هم این بچه داره میخنده هنون شدم چطور شده بعد دیدم؟ اصلش رو پیدا کرده. کیو مادر. حالا هر کسی که از اصل خودش دور بمانه هر کسی که دور مند از اصل خیش باز جوید روزگاره وصل خیش از, از من تعجب نکنید که ناله و نفیر دارم من از چی عقب موندم؟ بگید کاروان راه حق منزل به منزل میرود آه وابیلا که من جا مندهم جا مندهم رفتم که خار پای کشم قافل نهان شد از نظر من رفتم خار خودمو بکشم مشغول خودم شدم قافله عشق از دستم رفت یک لحظه قافل از آن یار شدم صد ساله رحم دور فتاد یک لحظه مشغول خودم شدم با یک قفلت صد سال از کاروان اهلقتی شدم عقب مندم این ای حالت دوست خداست همیشه دنبال چیه بگید خودشو به چی برسونه و اصل برسونه تاجرایی که تاجرای عمده هستن سعی میکنن واسطه ها رو ور دارن تا خودشونو به چی برسونن بگید کارخانه اصلی دلالا رو بردارن واسطار بردارن و خودشو به کارخانه اصلی برسونن تاجر محبت خدا هم میخواد چیکار کنه بگید پله پله بره پل پل پل تا خودشو به اصل برسونه الله نور السماوات و الارض بس برای این هفته ما شما الله سبحانه و تعالی همین را از همین ما شما قبول بکنه ان شاء